50مین باب بابو معجهه فی حجامت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حالا حجامت که همه میدونن چیه؟ حجامت گرم داریم، سرد داریم، با گرفتن خون بدون گرفتن خون داریم. با آتش داریم، بدون آتش داریم. الان دیگه از پمپ استفاده میشه. قبلا به خاطر تخلیه کردن هوا از زیر کاسه که روی پوست میذاشتن، از آتش شعله استفاده میکردن. یه پنبه یه چیزی مینزاختن داخلش با الکلی تا اینکه اون آتشه سبب بشه که تخلیه میشه. اون قسمت از پوست یا از گوشت بدن انسان مکیده بشه به داخل اون کاسه الان دیگه پمپ هست با پمپ می کشن هوا رو تخلیه میکنن و فرق گرم و سردش توی خط خط زدن با تیره یکیشون بدون خون کشیدن یکیشون با خون کشیدن خون از بدن خارج میشه. غیر از اون خونی هست که در خون دادن از رگ خارج میشه ولی خب بالا از بافت خارج میشه یه خاصیت خاص خودشو داره چون از بافت داره خارج میشه و اون بافت دوباره ترمیم میشه درسته یک فواید پزشکی خاص خودشو داره و توصیه رسول الله هم و تطه سلام به حجامت هم هست و یک درمانی خارج از اون خون دادن که خودش درمانه ولی خب یک چیزی یک پله بالاتره الان من فقط این از باب توضیح میگم آم. بدن انسان هر چیزی اضافه واردش بشه الله جل وعلا قدرتی توانی براش داده که اون چیز اضافه رو دفع کنه اگر ویروس شما دارو می‌خورید برای سرماخوردگی ولی خب دارو درمان نمیکنه برات اون ویروس رو که از بدنت خارج کنه نه سیستم ایمنی بدنت رو بالا میبره یا اون تب رو پایین میاره که اون کم کم خون خودت اون قضیه رو تصفیه بکنه اونو بندازه دور ایمنی بدن باید قوی باشه از لحاظ صحت جسم قدرت توان اینا بالا بره که بتونه آمادگی داشته باشه برای مقابله کردن با بیماری ها بدن سوس بدنه که ورزیده نیست بدنی که ضعیفه استقامت نداره خب یکی از ابزرها برای این که بدنت قوی باشه این حجامته گفتم حجامت غیر از اون خون دادنه ببطه بعضی از بیماری ها با بیماری درمان میشه یعنی معروف خصوصا تو طب سنتی قدیم بعضی از بیماری ها را مثلا که سعب العلاج شخص را یک بیماری دیگر بهش تزریق میکنن میدن بهش یعنی مبتلاش میکنن به یک بیماری دیگر تا اینکه ایمنی بدنش بالا بره بدون استقامت بکنه در مقابل اون بیماری که داره اون بیماری که ازش داره رنجش داره و ازش داره می ناله به قول خودمون خب حالا بگردیم به حجامت. حجامت. رسول الله صلی الله علیه و میگه که زمانی که رفتم به معراج هر آسمانی می رفتم به من توصیه میکرد حجامت کن، حجامت کن. خب این توصیه جبریل تاکید داره دیگه خب جبرئیل ماکل وحی از طرف الله جل جلاله داره توصیه میکنه. پس یک مزیتی هست تو این حجامت که دیگه تو دیگر درمان ها نیست، یک درمانه. برخلاف اون چیزی که خیلی از میگن ما درمان نداریم. نه، درمان داریم. ما نازل الله من داین الا و نازل له دواء. دایی نیست مگه برش دواه هست حالا خودشون میگن که ما ایمینی بدن رو بالا میبریم یا استقامت بدن ولی آخر درمان هست یکی از راخهای درمان که رسول الله صلی علیه و وسلم گفتن که جبریل به من توصیه کردن حجامت حجامت چکار میکنه؟ حجامت یکی از چیزهایی که هست همون بافتی که ما تیغ میزنیم خب ما تو خونمون گلبلو سفید داریم قرمز داریم خو خب گل و سفید سربوزه خونمون اون چیزی که تو زیست خوندی حجامت سیستمی میبینی بدن رو بالا میبره حالا خستند این جرقه ای که میخوره بدن تن یک آمادگی دفاعی پیدا میکنه در مقابل اون خللی که توش وارد شده خب میاد استقامت بکنه اینی که به جنبش در میاد بخاطر همین در حدیث دیگه داریم رسول الله صلی الله علیه و سلم حبس نشد خون تو بدنتون. یعنی چی خونتون غلیظ نشه خونتون مونده نشه خونت پیر نشه تو بدنتون چون خون قابلیت تجدید رو داره خونه گولبوی قرمز دارید مسئول انتقال اکسیژنه تو بدنتون بیاد از کلیه آب بگیره از سینه‌ها اکسیژن بگیره بیار وارد خون بکنه خب تا اینکه اون هم بکنه والا از اون اکسیژن به تک تک بافت های بدنت هر سلولی از بافت بدنت نیاز به تنفس داره خب زندگیش با اکسیژنه باید سوخت ساز بشه اکسیژن می‌سوزونه آتش دیدید شعله می‌زنید کبریت می‌زنید اکسیژن نباشه کا آتش نیست باید اکسیژن باشه اکسیژن هدر بره چوبه قبلا هم تو بحث چوب ما داشتیم دیگه خب چوبه. یکی از موادی که ازش تحکیم میشه اکسیژنه کربوهیدراده از زمین اون آبی که توش میاد میگیره غیر از اون با املاح دیگه از آهن و اینا از زمین H2O هیدروژن با اکسیژن و از هوا هم دیوکسید کربون دیوکسید کربن C2O او که اکسیژنه خب این اکسیژن از هوا گرف اون اکسیژنم از آب گرف این او زمانی که آتش می‌زنیم اکسیژنه هدر میره آتشه این شعله را ایجاد میکنه این سوخت و ساز را در بافت بدن هم اینطوره تو بدن تک تک سلولهای بدنت نیاز به این تغذیه و سوخت و ساز داره تک تک سلولهای بدنمون و خونه. نه باید بذاریم کهنه بشه نه باید بذاریم کهنه بشه بخاطر همین شما خیلی از مریضيها دارید با حجمت پی در پی، یعنی هر ماه حسنا الله در اون روزی که شر مشخص کرده حجمت بخوای انجام بدید به اون ترتیبی که یاد شده 17 و 19ام والله توصیه شده به این روزا نه درست نیست غیر از این روزا توصیه شده به این روزها تو طب سنتی هم اشاره میشه تو طب امروزی هم این مساله هست که 13 و چهاردهم و 15م توصیه نشده بهش خون معمولا تو ماه که کامله خون میجوشه حجامت باید در روزهای انجام بشه که خون آرامه آرامش داره تا اون بهره را ببری از اون حجامتت و بهترین بهره ای که میتونی ببری همون 19م هم ماه هم که شر مشخص کرده به 21 ما قمری چون به ماه رب داره جوش انسان گردش خون انسان و خون تو تجدید میشه با اون خون، خونی که از بدنت گرفته میشه، سبب میشه که کلیت به کار بیفته، نمیدونم کبدت به کار بیفته، بالاخره خب آنزیما و غیر همه تجدید بشن تو بدنت و بدنت نشاط بگیره برای خودش، اون شادابی و اون جوانی خودش رو حفظ بکنه. حالا بعضیا میگن نه من تو سال یک بار حجامت میکنم. شر نگفته یک بار دو بار. رسول الله صلی الله علیه و سلام بر اساس نیاز گفتن و توصیه کردن. حبس نشه خون، خون مرده نشه، کهنه نشه تو بدنتون. خونتون تجدید بکنید با دادن یک طرفه گفتم درمانه حجامتم یک نوع درمانه دیگه که چیزهای دیگر ما میتونیم باش درمان بکنیم ولی خوصا اون چیزهایی که رسول الله صلی الله علیه وسلم باش مریضی خودش رو درمان کردن چه از روی سرشون چه از روی شونهاشون بالاخره اونایی که طب سنتی واردن میدونن که از کجا می میگیرن و به چه مقدار خون بگیرن و فقط یه چیزی که هست تو بحث همین هجامت بعضی از این دوستایی که هجامت میکنن عمیق میزنن اون تیغه رو دقت بکنن که سطحی باشه عمیق نظری هجامت زمانی که شخص تیغ میزنه یعنی خیلی ریز بود سطح خیلی کمی بزنیم چون خطرناک هم هستا خطرناک هم هست خصوصا بحث آلودگی و بس حسین آب آبای خودمون که آلوده هستن وای میکروب توشه بالاخره شاید آب برسه به شاید همون عرق خودت شاید سبب بیماری بشه یعنی اون دردت رو بدتر بکنه خاطر همین این دقت بود بشه سطحی زده بشه و نه عمقی عبرت تنها به خون کشیدن نیست از اون موزه بلکه به حرکت دروردن جسمی و اینکه بدن اون نشاط اون شادابی خودش دوباره به دست بیاره و یک حرکتی در بدن ایجاد بشه خب اینجا تو شرح شیخ عبدالرزاق عباد حدیثی جای اشاره بهش میکنم قبل از اینکه بره به حدیث خود امام ترمذی که یاد کرده مثلا فرموده رسول الله علیه و سلم الشفاء في ثلاثه شفاء سه چیزه شربته عسل و شرطه محجم کیت نار و انها امتی عن الكي شفاء سه چیزه عسل نوشیدنش و تیغ زدن به خاطر و آخری هم داغ گذاشته که میگه من اومتم رو نهی میکنم هرچه خود نرسول هستم داغم گذاشته داغ به جای خودش این که شخص مثلا یاد بگیره که یا بدن خودش عادت بده به داغ گذاشته مثل قدیم آهی داغ میذاشته برای سردردش و برای پادردش و این درست راهکاره راه،, راه حله ولی که متخصصش لازمه شخصی که بفهمه کجا بذاره چطور بذاره باتر همین اینجا رسول الله صلی الله علیه و آله میگه امتمو میکنم از داغ گذاشته حالا غیر از اون حدیث 70000 نفری که وارد بهش میشن مستقیما یکیشون که مستثنا از این 70000 نفره یکیشون هم الذین لا یکتبون داغ نمیذارن از داغ سعی کنید پریز بکنید تا جایی که میتونید زیاد دروی درش نشه نه نشه یک جایی هست ضروری مثل تو جنگ زمانی که شمشیر می یا مثلا نیزه چیزی به طرفش و تیری چیزی می اومد داغ میذاشتن تا اینکه که خون واسه خون فوران نکنه برای بند شدن خون اونایی که اهل ساحلن هم برای بعضی از خاره بعضی از ماهی ها رو حلی جز او نهانه داغ ندارن واسه هرچی هم سوزن میزنن درمان نداره مثل سفر ماهی اون خارج اونایی که تو پا میره حسین اونایی که به این درد دچار شده میدونن فقط تنها چیزی که میتونه درمان بده اون میخ که تو آتیش بزارم بعد تو اون حفره اون زخم که خارجات کرده خارج سفره مایی تا درمان بشه وگرنه سوزن و اینا دیگه جواب نمیده براش یک راه حل یعنی از جمله احادیثی که اجازه شده که از حدیث صحیح اینکه دنبال تداوی و درمان باشیم تداوی عباد الله فإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا مع و شِفَاءً الا الهرم ای بندگان الله درمان بکنید خودتون و دنبال درمان خودتون باشید چون درد و مرضی بدون شفا و بدون درمان نیست مگر پیری و کن سالی سيساد حديث يمام الترمذي رحمه الله من حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال احتج مرسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو إن من أمثل دوائكم الحجامة حديث البخوري مسلمين حديث حديث حدیثی سلیم اسمش مالک سوال میشه در مورد کسب حجام پولی که درآمدی که کسی که حجامت میگیره به دست میاره بعد میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم روزی حجامت کردن در پاسخش میگه روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم حجامت کردن اون کسی هم که حجامتش کرد معروف بود به ابو طیبه فامرا له بصاعین من طعام رسول بعد از اینکه رو انجام میده این شخص رو انجام میده معمولا قدیما هم حجامتش مثل الان با چی نبود با کاسه نبود با شاخ هیوون بود یعنی می مکی تراب بعد دستشو میذاش روی اون سوراخ اون شاخ هیبون. و با نفس یعنی خونو می میکشید و اینو خودم تو مدینه دیدم یعنی همچنان آفریقایی ها یک از روش های حجاماتی که دارن با شاخ حیونه چون مهم مکشه یعنی اون گوشت بدن با اون پوست جذب بشه کشیده بشه مکیده بشه و یه حالت بیهسی به خودش بگیره و خونش اونجا جمع بشه که بعد از اون خون خارج بشه با تیغ زدن خب رسول الله صلی علیه زمانی که حجامتش ابو انجام داد دستور میده که غذا بهش بدن دو ساعت ساعم میدونیم چهار تا مده دو کلیو نیم دو سا همیشه پنگ کیلو برنج ولی خب پنگ کیلو اون وقت برنج نبوده گندمی جوی، الان از اون چیزی که استفاده میکنه خرمایی چیز حدود پنج کیلو، چی بدن؟ قوت بدش بدن غذابش بدن به همون کسی که هجامتش کرده غیر از این یه چیزی دیگه هم هست انارش، شفاعتش هم میکنه نز صاحبش این برده بوده کار میکرده در مزایش کاری که تو با� درامدی که به دست می آورد درصدی را به صاحبش میداد اون چون برده بود گفتم خراج اون حق مالکیت را به صاحب خودش میداد مثلا اگه 10 کیلو کار میکرد پاداشش 10 کیلو خرما بود 2 کیلوش مثلا باید میداد به چی؟ به صاحبش رسول الله صلی الله علیه و به صاحبش میگه می خواهشاً از این که وقتشو میده به امثال من و دیگران حجامت میکنه دیگه خراج ازش نگیر در مقابل احسانی که میکنه به دیگران تو هم این احسانو براش بکن این وقت خوش رو در اختیار همسال من قرار داد الان حجامت هم کرده دیگه ازش اون خراجو نگیر اون سهمی که داری در اون خرجی که در میاره دیگه ازش نگیر بعد میگه رسول الله صلی الله علیه سلم چی نیمی فرماین این افضل ما تدویتون بی الحجام بهترین علاجی درمانی که شما میتونید خودتون باش درمان بکنید چیه؟ حجامت بهترین درمان یعنی دکتر نریم به پزشک مراجعه نه بچه نکوشه بعد پردا بچه کوچک بگیری که پوشش دزگ حجامت بزاری گفتو بیا بس بهتره چیز حجامت بچه‌مو حجامت بکنم زردی داره زردیشو بگیرم و نه این کارو نکنید می‌کوشید بچه خودتا این توصیه به امسال من و شماست بچه اونجا نیست چون بعضی جدا در میگم این مسئله حالیشون نیست باطره همی رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود بهترین درمان حجامت برای تجدید خون بله خب فشار خونتون رو بگیرید نه که فشار خونتون بالا باشه بعد بیرید حجامت بگیرید یا قند خونتون بالاست اون کسی که قند داره مازه باشه قند شوخی نداره زخم پانسمان دیگه نمیشه خصوصا اونایی که قند دارن میدونن زخم تو بدن اون مریضی قند که ایجاد شد دیگه انهان میمونه بعضی فشار خونشون پایینه اصلا یک یکم کاسه نگذاشتی طرف قش کرده تپش قلبش پایینه فشار خونش پایینه نه اصلا تحملش نداره حجامت برای کسی که بیماری خاصی نداره مریض زمینی نداره خصوصا الا بعضی از مریضهایی که امروزه یا صعب العلاج یا علاج براش نیست مثل انواع سرطان بیماری هایی که منشأش انسان نمیدونه نمیدونه که از کجا بهش اومده چطور واگیر شده به این مبتلا شده به بی این بیماری یهو میبینه یه غده تو بدنشو تومور تو, تو بدنشو بدخیم خیمه زده به این ور اونور در اثر قضا هست در اثر چی خود پزشکانم نمیدونن براشون راهکارم ندارن نامید نشید معیوس نشید الله جل جلاله دردی نگذاشته مگه براش درمان گذاشته درد بدون دنیا درمان نیست، هست دراش درمان. تو اسباب را بگیر، زحمت به خود بده. رقیه کن. رقیه یکی از راهکارها هست خصوصا سوره البقره خوندن خیلی زیاد توصیه میکنم که دوستای خودم قبلا هم یاد کردم تو درسمون. سرطان خون داشت. والله دارم میگم الان الحمدلله میر میاد. الحمدلله الان نزدیک به 10 سال زنده نه کاملا خوب شد. سرطان خونش افتاده بود. پوستش شده بود به سخونش. کل بدنشو سخون شده بود. دکتر ناامید کرده بود، مایوس کرده بود خانواده‌اشو. ولی سبحان الله همون بقره نجاتش داد. قرآن هم شفاست. نازل من القران ما یک طرف شرقیه دارین یک طرفش هم این حجامت داریم حجامت خبر از این که اون بیماری حسن زمانه که بدخیمی کل بدن رو بگیره یک مدت درمانی هست 4 ماه 5 ماه برای خود بذار هر ماه حجامت کن درد گفتم بدون درمان نیست نس حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم آله فَإِنَّ اللَّهَ الله سبحانه یضع الداء او ان من امثل دوائكم الحجامه بهترین نوع دوای شما شما چیه خب اینجا عبدالله بن عباس رضی الله عنه ایاد میکنه بر اینکه رسول الله صلی الله علیه و حجامت کردن پاداش حجام کسی که حجامت براش انجام دادم دادن اما ابو قيبه خب در صحیح مسلم داریم از حدیث رافع بن خدیج رضی الله عنه که میگه رسول الله علیه و آله فرمودن کسب الحجام بخیف کسب و درآمد کسی که حجامت میگیره برای مردم خبیث ناپاکه خب سه ناپاکیه درش است خب چطور جنب ببندیم؟ اینجا رسول الله صلی الله علیه و در صحیح مسلمه میگن که ناپاکه و اینجا خودشون اج دادن، پاداش دادن، هزینه کردن برای حجامتشون، هزینه دادن برای اون شخصی که حجامتش انجام دادن. چطور جنب ببندیم؟ شیخ من با صرف جالبی میذاره. میگه اولا ناپاک بودن دلالت بر حرمت نمیده. مثل رسول الله صلی الله علیه و آله در میگن خبیزه، بیاس خبیزه. خباستش بشیه. آزاری که مأمومین میشن در نماز صف نماز بوی بدی که داره. بخاطر خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و میگه کسی میخواد پیاز بخوره فر به بالطبخ با آشپزی کردن پختنش بوشو ببرید از بین خباستش از بین میره پس خباست و ناپاکی دلات بر حرمت نمیده حرام نیست به اتفاق اهل سنت پولی که کسی که حجامت میگیره حرام نیست دوم شگاه به باذ رحم الله میگه مسئله دوم این که در جمع توفیق بین احادیث میگه که ناپاکی هم ما اینجا بگم منظورشو بفهمیم من. تو پیاس فهمیدیم ناپاکیشیه ناپاکیش توی آزارشه تو بوی بدشه ولی این که توی حجامت تو هزینه حجامت نسبت به اون پول چرا گفت ناپاکه میگه چون این کار از پس هر کسی برمیاد نمیاد که هر کسی میتونه یاد بگیره و به خاطر چهار تا تیغ زدن و یکم خون کشیدن کسی میخواد خدمتی برادرش انجام بده ارائه بده پول بگیره این خباثت درش است ناپاکه یعنی تو مثلا فرض شخصی می دونید داره تو ماشین وسیله هست میخواد براش پایین بیاری بعد میگه کرایم بده الهام مولی ما بده این زشته مؤمن اون چیزی که میدونه چیه با تعاونوا علی البر و, و التقوى تعاون میدونه چیه خب اینجا الان با اون تعاونه، این حجامت با اون تعاونه منافات داره تعاون البر و بر برقیوبیه یک احسانی میکنین اونم حرفه خاصی هم نیست یعنی پس هر کسی برمیاد خب این در چه شرایطیه در شرایطی که اسباب و وسایلش هجامت فراهم بشه برای همه و وسائلش فراهم بشه ولی همه بتونن هجامت بکنن ولی خب الان امروز علماء استثناء قرار دادن خاطر خاطره های صبل علاج و قند و نمیدونه فشار خون و اینا که نیاز به طبابت داره که طبیب و پزشک قبل از حجامت با تشخیص بده که انگار بیماری زمینه‌ای چیزی نداره میتونه حجامت بکنه میگه که اشکالی نداره که یک مطبی یک درمونگاهی یک جایی براشون باشه که یک پزشک باشه ماینش بکنه قبل از اینکه حجامت روش انجام بشه و الان رخصتش دادن علما بر اینکه تبدیل بشه به یک شغلی که شخص کلن وقت خودش رو بذاره برای این کار. این در صورتی یک شخص کارش این نباشه این شخص بطه به کارش این نبود ولی اینکه این شخص کارش بخواد این بذاره، مسئله فرق میکنه در اصل باید این کار همه یاد بگیرن و همه باید مفتی و مجانی به هم دیگه انجام بدن چون چیزی خاصی نیست دو تا کاسه گذاشتن چیز خاصی نیست همه میتونن یاد بگیرن با تیغ زدن مهندسی و پیمان کاری نیسته یه کاسه است میذاری و چند تا تیغ میزنی. اینو همه میتونن یاد بگیرن یاد بگیرید برای هم دیگه انجام بدید دیگه نیاز نباشه که مطی بزنم خیلی خب معنه بشید قبل از قبل از انجام حجمت و هرچکه گفتم والا اما دادن اینکه شخص میتونه برای خودش در منگاهی بزنه برای این کار فنان هم هست تو هر شهری بری میبینی مطلب حجامتی هست کسی که اگه خواست بحثو ادامه بده تو بحث حجامت میتونه به کتاب زاد المعاد ابن قیم برگرده اونجا دیگه مفصل ابن قیم در فوایدش و در منفعتهای حجامت اونجا سخن به میان آورده. سياسة شخصية كومين هاديس. نماذج النبضي رحمه الله مقياس حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاء ابن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميله عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجامة أجره. علي ابن أبي طالب رضي الله عنه مقياس. رسل الله صلى الله عليه وسلم حجامات تران جمدت. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم. حجامة تان جمدت. يعني بريخوشون يكسب ولاش حجامة تان وأمرني. علي ابن أبي طالب رضي الله عنه رسول الاساسم به منم دستور داد فعطایت الحجام عجله که به من دستور داد که عجرین پاداش بدم به اون حجامی که حجامت از من گرفته پاداشش بدم و من اون پاداشو دادم اینم حدیث دیگری بر این که کسب حجام حرام نیست سيسدو شاسو دومين دو حديث. نمام الترمذي رحمه الله من جياد حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج ما في الأخدعين وبين الكتفين وأعط الحجامة أجره ولو كان حراما لم يعطه. إن فاتوى عبد الله بن عباس أبليهم كدوشيم فاتوى أنا رضي الله عنه. كالسناد بيكون بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس من ك رسول الله صلى الله عليه وسلم حجامت كاردن. حجامت از کجا گرفتن اول اخداین اخداین کجاست بالای گردن روی سر این اخداینه اخداین این دو جا بهش میگن اخداین بالای گردن پایین سر هم دقت بکنن روی رگ نزنن زمانه که تیغ میزنن روی رگ نزنن فست چیز دیگه از غیر از حجامت اون تو رگه فسته چکار میکنن یا رو پیشینی میزنن مثلا کسی که میگرن داره یا روی دست یا رو پا میزنن یا تیغ میزنن عمقی بعد این رگه خون فورا میکنن میاد بالا بعد مثلا تو یک کاسه تو یک ظرفی مثلا اون خونه جمع میکنن این فسته این رو رگ میزنن حجمت نه حجامت رو عض میزنن روی گشت میزنن چه که گوشته راگنس گوشت رو گوشت باید بزنید اینو یعنی گفتم از باب دقت حالا خصوصا این اخداین که پایین سر گفتم حالا از دو طرف خصوصا اونایی که از دیسک گردن مینالن اونایی که از خروپف مینالن حالا معمولا حالا خروپف یا به خاطر انحراف بینی هست یا به خاطر سینوزیت یا به خاطر دیسک گردانه که بیشترش به خاطر دیسک گردانه. غیر از اون پرخوری و چاقی معمولا چاقی هم همینطور سبب خروپف میشه خب یک از راه‌های درمان همین حجامت از این اخدئین از این دو طرف سر و برای سردر دل خارج از اینجون بحث این جون بحث اومد یه جای دیگر که بهش توصیه میشه فرق سره. مثلا برای اونایی که سردرد مینالند و از خواب سنگین مینالند و توی تو مدینه توصیه می‌کردن به خاطر حفظ و حافظ حافظه قوی میشه و حالا میگن تجربه هست و همه انجام دادن و همه انجام میدن و اینا آخر. خب میگم حتی به سنتی هم این قسمت توصیه میکنن اینجا و پس این گردن سر پایین و آخری هم بین کتفین بین دو تا کتفین اینجا ها روی شونه دو طرفشونه. معمولا دردی که ایجاد میشه تو شونه ها منشأش معده هست حالا خوصا اونایی که معده نفت داره نمیان خودشون علاج بکنن خب شعر اومده یه سری چیزها قرار داده برای درمان معده قبل از این که لا اونجا رو درمان بکنی. حالا هر چاک اونجا هم خب رسول الله سه حجامت گرفتن و یک راهکارش حجامته. ولی قبل از اینکه به شونه هامون بزنه، باید معده رو درمان بکنی. بعضی از دردها از مشش معده‌اش. غذاهای قبضی مثل گوشت گاو، غذای نفخی مثل نخود اعده است. اینا کار دست انسان میده. مقاطی همین توصیه میشه زیتونی، روغن زیتونی چیزی که اون غذای را برات نر بکنه. بعضی جا هست اعصابه شخص از بس خودخوری میکنه نه پرخوری, پرخوری هم شاید سبب بشه ولی بله خب بیشتر خودخوریه تا پرخوری شخص امتحان داره استرس داره حالا چیکار کنم حالا امتحانی حالا چم میارم این اعصابش حالا من تو دانش آموزا میگم نمیگم تو کسی که تو بازار چکش برگشت خورده و نمیدونم مشکل داره تو کارو زندگیش با زنش با دعوا و فلان اومده بیرون کاری با ندارم اونم میذره ولی بله خب یشتن چیزی که ما ابتدا این با این مشکل معده که رفلکس پیدا میکنه و اسید معده و بعد میزنه درچه معده و قبل از اینکه به فاموتیدین برسی اعصابه اعصاب میزنه به معده اعصاب میزنه به معده تو تنش داری با خودت استرس داری این میزنه به معده این معدهت میزنه به شونه خود به خود این شونات میگیره احساس میکنه یه رگی هست فشار میگم موشه بعد میام میگم کسی ماساژ میده بعدم این موشو بعد موشه بیرون ببریم بعد فشار میده به بالا درست یک از راهکارها شد ماساژ باشه ولی که بهترین راه حل برای این نوع ها، دردی که با بیماری الان ایجاد شده اون بیماری که تو گرفتی بیماری عصبیه اعصاب زده مدد معده‌ام زده به شونهات بعد شونهاتم میزنه به سرت و سردرده تو نمیتونی بخوابی یکی از این های درمان همین حجامت گرفتن از این دو طرف روی شنه ها روی شنه ها از بالا تا اینکه اون بافت دوباره ترمیم بشه دوباره اون قسمت تجدید قوا بکنه دوباره اون شوره ش اون شادابیش بر بگرده. خب وجه سناد این حدیث که توش اینجا ایراد میکنه امام ترمیدی بحثه پاداش کسی که حجامت میگیره میگه اعطى الحجامه اجره رسول الله صلی الله علیه و پاداش حجام حجامت گرفتن و پاداشو اجرو خزینه اون کسی که براش حجامت گرفته رو پرداخت کردن ولو كان حراما لم يعطي حرام بود که نمیداد رسول الله عائسه پول به کسی که حجامت براش گرفته بس کسب حجام حرام نیست فقط گفتم تنها چیزی که هست رسول اصلا نمیخواد تبدیل به شغل بشه میخواد همه از همدیگر بهره ببرن ولی خب الان امروزه که همه مشغول شدن و کسی وقت برای دیگری نداره به خاطر همین من حالا اجازه دادن سيسال الشيء سيساو حديث أمام الترمذي رحمه الله من حدثنا هارون بن أسحاق قال حدثنا عبده عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ادعى حجاما فحجمه وسأله كم خراجك فقال ثلاثة آصع فوضع عنه صاعا وعطاه أجراه حديث عبد الله بن عمر دار تأييدها حديث قابلي حديث أناس وعلي وابن عباس ست حديث قابلي عبدالله بن عمر ردیناها میگاد رسول الله صلی الله علیه و سلام حجامات گرفتن و اون کسی که براش حجامت گرفت رو صداش زدن برده بوده ازش سوال میپرسه خراجت چقدره یعنی چقدر از اون سهم کارت میدی به صاحبت ازو خرجیت فقال ثلاثه اصع سس سس ساعت تقریبا گفتیم اگه هر ساعه حساب بکنیم دو کیلو نیم میشه از گندم از جو و از خورما تو اصع فوضع عنه صاع توصی می کنه به اون صاحبش که یک سوم رو ازش ساقت بکنه به جا سه تا سا ازش دو تا صاحب بگیره یک سا ازش نگیره و و اجره پاداشش هم بهش میده یعنی خزینه اون وقتی که براش گذاشته و حجامت انجام داده رو بهش میده شفاعت میکنه فوضع عنه صا فوضع یعنی شفاعه له عند مالک یعنی شفاعتش میکنه نزد صاحبش که اون ازش ساقت بکنه اون یک سا دو بیشتر ازش نگیره سیساش هست شو رمین حدیس حدیث هنر سب مالک رضی الله عنه. قال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحتجم فل اخدايني والكاهل و کان یحتجم لسبع عشره و تسع عشره و احدا و رسول الله صلی الله علیه وسلم حجر مات قريقتان در اخداين اخداين حدیث قبلی داشتیم شونها؟ والكاهل. کاهلم بالای بالاي كمر. که دیسک گردن میزنه خود سهون که جلوی کامپیوتر میشینه اندون ای درس کنم بچه درس کن ام شش هشت یک خروپف زیاد می کنن به خاطر اون دیسک گردنشون فشار کره گردنشون اومده یک از جاهایی که مفیده برای به کردن و به طرف شدن ولی نگاه کنید نگید که من یه بار حجامت گرفتن جواب نگرفتم و. الان پنجمین حدیث رو دارید بخونید نه یک حدیث علی بن نبی طالب دیده، ابن عباس دیدی انس دیده فلان دیده. یعنی رسول الله صلی الله علیه و این کار همیشه تکرار میکردن و بعدم اینجا میگه رسول الله صلی الله علیه این کار را در و یا یا انجام درمان اینطوری نیست که مثلا بگی من این بار حجامت گرفتم و جوابش هم بگیرم نه شاید نیاز باشه سه ماه پی در پی شاید نیاز باشه چهار ماه شاید شش ماه شاید پنی ماه اینو باید پی در پی هر ماه کسی که شروع میکنه برای درمان البته دارم میگم برای درمان اون عضو را همیشه به تحریک در بیاده تا اون مشکلش برطرف بشه من اشاره کردم مثلا الان تو این حدیث هم اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلام حجامات کردن تو 19 و 21 و توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلام بر همینه که نیاحت جنین اگر حجامات انجام میدادن تو این روزها انجام میدادن از ما روز 17 روز 19 و 21 نه اینکه روزهای دیگه نشه ولی نه توصیه طبابت ها این که رسول الله صلی الله علیه و سلام این روزها رو مشخص کرده از باب طبابت خب یک سری روزها به علم امروزی میگیم امنه مثل سیزه و چهارده هم و, و پنزه هر که خون به جشمه. مثلا شما در شهر دارید روزه ایام بیغ وسط هرسمو برای چیه برای اینکه نذین زن بچه تو کاری نکنی تو خونه خودت جوش اومده جدا دارم میگم بعضی خودشانم نمیدونن زن زمانی که عادت میشه اعصاب میچسونه و حوصله خودش نداره مردم حیضش همون وسط ماهه 12ام 13 15ام روزه بگیر جدا مردا نیاز دارم روزه گرفتن خودداری دارم بعضی با خودشون تو خصوصا تو این سه روزا باور نمیکنی اصلا جوش داره میزنه از صورتش واضحه قرمز شده ولی خودش نمیدونه که دردش از کجا خونش داره جوش میاد بخاطر ماه هست. روزه بگیر یک از درمانها روزه است یک از درمانها حجومته سيساشة صفانجمين حديث امامة المذي رحمه الله بيقيا حدثنا اسحاق ابن منصور قال انبان عبد الرزاق عن معمر عن قتاد عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاج وهو محرم بملل على ظهر القدم اعنیز ابن مالک الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم حجامت گرفتن آلا خودش ح... از خودشون حجامت گرفتن کسی ازش حجامت گرفته یاد نشده شخص اگر میتونه از خودش حجامت بگیره میتونه بگیره مثلا خلصا اینجایی که رسول الله صلی الله علیه وسلم حجامت گرفتن حجامت از پشت پاشون گرفتن الو البته قبل از اینکه بره به اون جایی که حجامت گرفته می که انس رضی الله اون جایی که این حجامت رو انجام دادن رسول الله صلی الله علیه و احتجا و هو محرم در حال احرام بود اینی داشت میرفت به مکه به ملل ملل هم جایی هست بین مکه و مدینه به مدینه البته نزدیکتره به مدینه نزدیکتره بعد کجای بدنشون اون حجامت رو انجام دادن حجامت را على ظهر القدم ظهر القدم پشت پا چرا رو پشت پا انجام دادن در مسلم و احمد اومده که چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم پشت پاشون حجامت گرفته یک من وجع در روایت دیگه متنس انس من وجع ان کان به به خاطر پادردی که داشتن رسول الله صلی علیه و پاشو درد میکرد حالا بخاطر چی بود الله اعلم ولی خب رسول الله صلی علیه و پشت پاشون حجامت میگیرن به خاطر دردی که داشتن خب این آخرین حدیث باب حجامت فقط یک چیزی که هست نیوت قالب احرام اینجا جایی رسول الله صلی الله علیه وسلم حجامت کردن که نیاز به تراشیدنمون نیست. اگر میخوای از سر بگیری درستی سرت رو تیغ بزنی بعد حجامت بگیری میگید سرم درد میکنه ها. قضیه فرق میکنه اینجا رسول الله صلی الله علیه وسلم از پشت پاشو این حجامت رو گرفتن و جز محضورات احرام نیست و این چهار جایی بود که در حدیث اومده بود در بحث حجامت چهار جا دوتا زیر سر یکی وسط این جایی که دیسک گردنه وسط کمر یعنی زیر گردن بالای کمر دو تا هم روی شونه ها یک هم پشت پا این چهار تا از حجامت رسول الله صلی الله علیه وسلم اومده تو حدیث از جمله جاهای دیگه که توصیه گفته میشه فرق سره بعد زیر قوزکه و همچنین بغل های زانو و از مایچه های روی ساق پا کستن اونایی که پادر دارن با سرما مشکل دارن می کم کلر روشن بشه، یکم هوا سرد بشه. اینها نیاز به تجدید خون دارن. این کم ها خوب نیست ها نیاز به خوردن غذاهای گرمی دارن سردی بدن خوب نیست. سردی بدن یه چیز خوبی نیست چون سردی بدن نشانه افسردگی، نشانه دلتنگی و اینا میده. مثلا آمار خودکشی تو ژاپن زیاده. علتش چیه؟ خاطر که همیشه ماهی میخورن. ماهی هم سردیه. اونها مکملی به اسم خرمانا دارن. ما خرما داریم. ما میتونیم اون سردی غذا رو با اون گرمی متعادلش بکنید بدن باد گر باشه بدن باد عرق بکنه بدن باد جنب داشته باشه بدن باد همیشه نشاد داشته باشه و نیاز هست یا اینکه شما میوه زیاد بخورید مثلا به فرض و خاطره حالا اون ویتامین سی چیزی و از پرتقالی غیری خونتون رقیق بشه خونتون به گردش در بیاد خارج از بحث طب سنتی و تب کلاسیک خارج از طب نبوی بهت میگم کاری بینا ندارم فقط یک قاعده کلی بهتون میدم مثلا برای دیسک کمر که بهش میگن ارق نساء سیاتیگه همون ارق نساء سیاتیک بهش میگن رگی هست که از کمر میاد ران انسان میاد به ساق پا از سمت بیرونش البته نه به داخل میزنه از زیر زانو بعد میاد تا پشت پا خب این عصب که وصل به کمر خشک میشه تندوم رباته خب اینا همه وسلم به هم دیگه خب جای این منقبض میشه یا باد ورزش کشیشی انجام بدی که دکتر بیاد میگه برو تو آب راه برو و نمیدونم ورزش کشیشی انجام بده تا اینکه این, این رباطا دوباره این عصبا بکش این یک راهشه یه راه دیگه هست راه شرعیشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتم طب نبوی من کار ندارم به طب کلاسیک و طب گیاهی طب نبوی خصوصا تو بحث گرمی رو که من اشاره کردم چون بعضیا گرمی رو اشتباه میگیرن چون ما قبلا هم تو بحث غذاهای رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتیم و خواهیم داشت باباهای بعدی رسول الله مثلا اگر هندوونه می خوردن می خوردن دیگه و میگفتنم میفرمودن که من سردی این رو با گرمی این خلط میکنم. سردی مصالح سردی بدن رو سرد میکنه خسی میکنه انسان افسرده میشه یکی از گرمی هایی که ما نیازمندش هستیم و بدن ما نیاز داره دنبه بره هست بره خودش گوشتش گرمه خیلی بدنم نیاز داره با تمام توصیه در قربانی اول به بره هست گوسفنده توصیه بهش هست به خاطر منافعی که توش هست و بعد از اون چطوره گوشت شتر هم گرمیه گوشت گاو سرده قبضیه خب این گربی چه کار میکنه و چه نوع درمانی توش هست و چطور با درمان بشیم خودمون درمان بکنیم با دنبه بره رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه علاج ارقنسا یا همو سیاتیک میگه الیتو شات اعرابیه الیا تشات اعرب الیه دومبه بره که تو دشت و دمن از گیاه علف خورده نه که بری جو خورده نه تو دشت و دمن چون از دشت و دمن انواع گیاهانی که اونجا هست بوته هایی که هست این بره میخوره از روغن اون گیاه علف ذخیره میشه تو کجا تو دنبش یعنی انگار تو عصاره از انواع دارو رو دارید مصرف میکنید با همون دنبه بره داره میخوره دیگه الف میخوره که انواع علفه که هست تو هم نمیدونیم بلی جسم و بدنی که الله قرار برای بره سوخت و ساز میکنه قشنگ عنوان يك دارو برات تو کجا تو دنبش الیت و شهت تذاب زوب میشه چطور زوب میشه قطعه قطه تیکه تیکه توی دیگی میندازید حالا میخوای خاید بوش ببری چند تا پیازام توش میریزی مانع نیست مهم اینه که اون روغنه باشه آب لیمو هم توش نریزی چون آب لیمو ته میشینه اصلا خاطی نمیشه آب لیمو با روغن دونبه بره دونبه بره رو ذوب بکنید تیکه تیکه بکنید ذوب که شد الیتوشهت و تذاب وتشرب على الريق ثلاثه ايام ذوب میشه سه روز ناشتا بکن. جایی هست معده از بس که سرد شده، از بس که هضم غذا نمیکنه. میزنه به کمرش. برای درمان این مشکل معده و مشکل کمرش، رسول الله صلی الله علیه و آله توصیه می‌کنه بچید دنبه برره. نه اینکه دیگه دو قاشق بخورید، نه یه لیوان، روزی یک لیوان. بعد یه چیزی که هست، بعضی‌ها میگن خب ما کلسترول داریم، چربی داریم و نمی‌دونیم خب چربی اون بالا می‌زنه، واکنید. چربی دونه رو دارین، چربی مفید داریم. چربی غیر مفید داریم. چربی برره چربی مفید. یکی از راه‌های درمان غیر از این حجامت، این دنبه بره است. کم نگیرید. مخصوصاً گفتم برای درمان اون سردی، سردی چیز خوبی نیست حالا غیر از اون ورزش، غیر از اون حرکتمون بدن من همیشه ازش کار بکشین خب سبحانکالله، بحمدیک، سبحان الله، بحمدیک، صلی اللہ، محمدین و حال محمد.